بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله على سیدنا محمد و آله قهاره اگر جلسه نوشته که درست نوشته که درست درست درست بسمهی از نمیشکار دیم بسیم هیچ توالا اینکریبی نمیشن اینکریبی نمیشن بسیم هیچ توالا فی و فی الاصلا فقط بنیسم فی اللغة التجبدو فی تجوید التجويد و الفندقه فين الفندقه لونغاين هي اه دار لغات في <سؤال> أه نايمسين؟ أه تمام. وفي الإصطلاح، وفي الإصطلاح، علم، علم، علم يعرف ب. مين بيش علم علم علم باشی نمیزی باشی اگر این ایش بزرگ پایینتر رو میبینه دیگر ایز اتر چی؟ بیه امران بیه امران امران اولا امران نو دقاین ذا اولا ذا بوينت اولا تلفظ تلفظ تلف كل حرف نو تلفظ کل حرف من حروف القرآن الكريم. القرآن الكريم. آه؟ تلفظ کل حرف من حروف القرآن الكريم تلفظ صحيحا تلفظا صحيحا تلفظ کل حرف من حروف القران الكريم تلفظا صحيحا دغه يا تلفظا صحيحا تلفظا صحيحا اورسی چه ای هیچی ما برخد نمیشیم ثانيا ثانيا اولا تلفظ اولا كل حرف من حروف القران الكريم تلفظه صحيحا ثانيا احوال الوقوف احوال الوقوف وقفه احوال الوقوف على آیات احوال, احوال, احوال الوقوف على ايات آه آه آه احوال الوقوف احوال الوقوف على آيات القرآن على آيات القرآن و کلماتش شریفہ الا على آيات القرآن و کلماتش شریفہ قرآن و کلماتش شریفہ على آیات القرآن و کلمات شریفه احوال الوقوف على آیات القرآن و کلمات شریفه نویشتیم؟ خب این کل هست و بود تجوید هست ها تجوید همین علمی است که با این علم علمی دو موضوع یا دو نقطه باید به دست بیاید یک خود حروف تلفظش باید به شکل صحیح یک آدم مجوید یک آدم تجوید دان باید آشنا بشه و بلد بشه و انجام بده دقیق می کنه چه <تصفيق> اولین اثر که تجوید به عنوان یک علم روی عالمش میگذارد این است که باید مجوید حروف رو صحیح تلفظ کنه مجوید یعنی کسی که تجوید می دانه <تصفيق> اگر کسی حروف رو صحیح تلفظ نتواند معنیش این است که از علم تجویری که خوانده اثر بهش نگذاشته و نفعه نبرده چون علم هرچند بشتر دانی درست پس تجوید از علوم کاربردی است که باید ما آن را به کار ببریم و الا خواندن و نخاندنش هیچ نفعه به ما ندارد این یه بحث بعدی که با توجه به علم تجوید ما و شما به دست میاره اینه که در کجای آیه قرآن کریم وقف کنیم درست چگونه وقف کنیم و اگر در کل آیه جایش اون جای خاصی که باید وقف بشن نشود مجبورم یا غیر مجبورم به یک کلمه وقف کردیم چگونه باید وقف کرد و وظیفه چیست درست شد؟ نا. علم تجویر و ما اینمی مسائل و این سوالات رو پاسخ میده فهمیده فامیده شد؟ با... حالا کلمه و کلمه ترجمه میکنیم شما باز ترجمه شو دیگه نوشته نکنیم این آره فارسیست دیگه خب تجوید و علمون یعرفو به امران علمیست که شناخته می شود با اون علم تجوید امران، دو دانه امر، دو مسئله امر اول، دو امر امر اول چیه؟ تلفظ کل حرف من حروف القرآن کریم تلفظ هر حرف از حروف قرآن کریم چطوری تلفظ تلفز؟ تلفزان صحیح تلفز سخن. خب امر دومش چیه؟ احوال الوقوف وقف حالتش وضعیتش چگونه هست؟ درست؟ احوال و حالات وقف ها بر آیات قرآن و کلمات شریفه قرآن احوال وضعیت وقف بر آیات قرآن و کلمات قرآن و کلمات قرآن. خامیدیم؟ شما دارم صحبت میکنی؟ آره؟ آه. چی شد؟ آره گفتی یا نه؟ نه؟ تمامی قسمت؟ تمام شد با شما خب باریم بخصی بعدی حالا تجبید رو فهمید آه. تقسیم معنیش چیه؟ بخشید نه آه اینی خو؟ زیبایی بعد زیبایی. از تحسین نیکوگردانیدن زیبایی. درسته؟ آره. خب، هست تجیدو فی لغت التحسین و فی الاستلاحی علم یعرف به بهی امران. الامر الاول التلفف الصحيح للحرف. الامر الثاني التعرف باحوار الوقوف. این خلاصه شد. سشن فهمتن چی گفتیم دیگه ها اه موضوع التجويد موضوع موضوع موضوع برای موضوع تجوید بینمیسیم که الکلمات القرآنیه چی؟ الکلمات القرآنیه قرآنیه نه این اوزهش هست اوزه کلمات القرآنیه بعد کلمه های قرآنی. کسی برای ما توضیح میده که موضوع تجوید کلمات قرآنی هست یعنی چی؟ تلفوز درستی کلماتی که در قرآن است باید رو تلفظ یکیش تلفظ درستی درست درست واجه های قرآنی، درست؟ این یکیشه ببینید، ما شما در بحث قرآن باید مختلفی داریم، مثلاً ساکنن را چگونه رفع رف التقا کرد؟ برای چطوری وقف کرد؟ غنه چطوری باید باشد؟ اقلاب اقلاب اقلاب و همه باید دیگر در صفات و در احکام و همچنین در خروجی آه، آه، فرق بین تلفظ خروف متشابه هم یا خروف هم مخرج چیست؟ مثلا تفاوت بین چه؟ قا و. تا او. اره آره و تا در چیز مثلا خب همین مسائل وقتی ما نگاه کنیم یا روی یک حرف درست شد که خود یک حرفشم کلمه گفته میشه یا یک کلمه که متشکل چند حرف که اونم کلمه هست درست کلمه را کسی میدونه چند دسته هست؟ م مرکبات ساده مرکبات ساده دیگه دست های دیگه چی هست خب یک نوع دیگه را بگین حالا از آنلاین سوال نکنید یک نوع دیگه اشاره شرا... یک شرا بگن. دو دیگه شما بگن. يكش اسمي اسمو فعله اسمو فعله اسمو اسم فعل حرس <تصفيق> بله کلمه چه دسته میشه اسم میشه حرف ببینید این حرف دقت میکنید چه میگیم حرف یا یک حرفوا واقعا یا چند حرف درست اگه یک حرف بودم کلمه اگر چند حرف بودم حرف حتی در عربی با میگیم bale حرف خودش یکی از اون کلمه است حرف خودش یکی از اون واقعه کلمه است دقت میکنید چه میگیم وقتی میگم موضوع علم تجوید کلمات قرآن هست این کلمه یا کلمه مرکب چند حرفه یا کلمه است که یک حرف دارد مثلا برای نمونه نون یک حرف هست یا نیست یکی از انواع کلمه است درست اگر نون رو در کلمه مرکب ببینیم بله جوزی کلمه هم هست اینمی یک دانه نون در قرآن کریم، در سوره قلم خودش یک حکم خاص داره. درسته؟ هم یک حرف و هم کلمه هست. خب، از اون طرف کلمات دیگه شان هم همطوری درست؟ پس بنابراین وقتی موضوع علم تجوید کلمات قرآنی هست، ای بیدونه صدایت شما وقت موضوع علم تجوید کلمات قرآنی هست این کلماتش با گونه های مختلیف مباحثی که مربوطش هست موضوع علم قرار پرامیده موضوع یعنی چه؟ یعنی تجوید می روی کلمه بحث میکنه میگه که یعنی اینطوری باید باشد اینطوری باید عدا شود درست؟ آه. خب پس موضوعی شدم شد تمام غایت و تجبید خب کمیستیم پس هم؟ دست هست؟ که علا ثلاثت انواعیم ثلاثت انواعیم اونش اینو اگه رو غایت و یه نمیه غایتو اول تعریف تجوید، موضوع دوم موضوع تجوید، موضوع سوم غایتو تجوید عنوان مگیم چی و عنوان سیم غایتو تجوید تعلم النطق بالأسفل. تعلم النطق باللفظ القرآن باللفظ القرآن باللفظ القرآن نوشتیم غلا نحو غلا نحو غلا نحو نوشتیم ما بلغه ما بلغه ما بلغه ما بلغه نوشتیم النبی النبي الكريم آم. النبي الكريم صلى الله عليه وعده وصون اللساني وصون اللساني صون انترى بإنسان بأل الصوت وصون اللساني وصون اللساني عن الخفائی <سؤال> فی قراءته، عن الخفائی فی قراءته، خفائی؟ خفا عن الخفائی؟ خفا خطا آم، آره عن الخفائی؟ عین، امزه هست، دیگه خفایی؟ آم فی قراءته. فی قراعته آن عن الخطای فی قراعته نویشتیم؟ بله بله جدا جدا نوشتم اینو ببینیم که ما ترجمه کنیم نوشتم گفتیم که غایت و تجوید تعلم القران چه تعلم النطق بلفظ القرآن تعلم یعنی آموزش غایت و تجوید یعنی هدف تجوید درست یا سماره تجوید درست سماره نه شما غایت چه هدف یعنی صرف تلفظ غایتو تجوید یعنی هدف از تجوید ما چرا تجوید بخوانیم هدف از خواندن تجوید تعلم و نطق هست آموزش ادا کردن نطق ادا کردن فهمیدیم آموزش ادا کردن چی را ادا کنیم به لفظ القرآن خود الفاظ قرآن را ادا کنیم فهمیدیم آ چطوری ادا کنیم؟ علا نحوی علا نحوی بگونه ای که به ای که ما بلغه النبی الکریم کریم آن گونه که ابلاغ و فرموده است پیانبر اکرم صلوات الله و سلام ما قرآن کریم را باید به ای تلفظ کنیم که همطور پیانبر اکرم به ما گفته است؟ فاهمیده یا نه؟ اگر دقت نکردین رد میشیم دیگه خلاص. و صون اللسان عن الخطا صون مسونیت نگهداری و محفوظ ماندن آه، محفوظ ماندن زبان از خطای در قراعت قرآن محفوظ ماندن زبان از خطای در قراءت قرآن فامیدیم؟ دو اینکه محفوظ ماندن زبان از خطای در قرائت قرآن فامیدیم آلا؟ خب بحث بعدی آره آره من وانم یادش. شنیدیش؟ باش بگه من نه فقط بود. اگر انگلیسی گفتی باید جریمه بدی جریمه شمی چیه مقابلش یک کلمه باید عربی بگی هر کسی یک کلمه انگلیسی گفت یک کلمه عربی باید بگی نه حکم تجوید یو حاول المسلمون یحاول المسلمون وقتی ما ادا می کنیم می فهمیم کدام حرف رو می نه؟ یو حاول المسلمو ان یو ادیه ان عنه ان ان یو ادیه ان یو ادیه حروف القرآنه یو ادیه یو ادیه آه، یو ادی انتفاض یو حروف القرآنی، حروف و على النحو انا على النحو على النحو حروف القرانيات حروف القراني والفاظهم والفاظهم على النحو الذي النحو الذي الرسول قد ذا عنك شيء لا الرسول الاعظم صلى الله عليه الرسول الاعظم تمام شد؟ ها پیشروی 100 نقطه هم بزنیم که یعنی ادامه دارد. آو بام اعظم داره. تمام شد نوشته هستیمو؟ ببینین سعی کنین حکم تجوید ما پیشتر گفتیم که موضوع تجوید کلمات قرآن است هدف تجوید تعلوم یا آموزش تلفظ قرآن کریم بر اساس اونچه که نقل درست حالا حرف این است این تجوید که ما میخوایم چقدر رعایت کردنش برای ما مهم هست درست خب مسلمان یحاول المسلمو یعنی مسلمان دنبال این هست ای این اینکه ادا کند حروف, حروف القران حروف قرآن را و الفاظه و الفاظ قرآن را على النحو الذي بجنه تلا الرسول الاعظم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون گونه تلاوت کرده درست این از محاوله ها از تحویل ها یا از وظایف یک مسلمان پس اگر یک مسلمان قراعتش را به گونه قراعت انجام نده مثل این است که دستور را رعایت نکنه بنابراین تجوید برای ما یک حکم میتونه باشه در نماز هم، دقت میکنه چه میگم؟ در نماز هم ما در بخش قراعت چند تا مسئله راجع به رعایت کردن تجوید داریم دیگه؟ هیچ خواندیم یا نخواندیم؟ نمه هم. قراعت قرآن که با نماز باید نماز صلاحا رو میخوانیم باید هم چوید باشه آره، در درست؟ قراعتیه که در باب نماز هست راجع، در توزه المسایل نوشته قراعت، یک از واجبات نماز قراعت هده و انمو مطالعه کنین اونجا نوشته هست که تجوید تجوید خواندن نماز چطوری هست فای واجب هست یا نیست بدون شک اگر نفر میتواند کلمه را درست ادا کند بر اساس ادایی که پیامبر انجام داده است و اون گونه ادا نکند نمازش باطلی خواهد هست درست برای همینه که در جلسه قبلی ما و شما جلس قبلی قبلی راویان را داشتیم بحث میکردیم راجعه با اون راویان البته ایک نکته هم هست راویان باید قابل اعتماد باشه که وقتی مثلا با ما و شما میگه پیامبر این دونه قراعت کرد اعتماد کنیم که واقعا پیامبر این طوری قراعت کردن درست؟ به همه اساس قراعت ما باید نسبتی به پیامبر یا یکی از عیمه ادهار ای علیه داده بیشه اگر بر اساس قرایت اونها نباشه قرایت موجمون ها درست خواهد بود ناغذ درست پس پس این تجبید یکی از علوم کاربردی لازمی برای یک مسلمان هست و یکی از علوم کاربردی ضروری و حتمی برای یک مسلمان هست تا که برای نطق صحیح الفاظ قرآن کریم و نماز برای نماز خواندن بی به شکل قراعت قراعت نبی اکرم و آل پیامبر قرائت بنماید فهمیدیم؟ همین و آخرین عنوان اهمیت تجوید اهمیت تجوید نویشتیم؟ در توضیحش بینویسین این ایجادت القراءه بله، این ایجادت القراءه ایجادت القراءه, ایجادت القراءه قراءه را اینطوری بینویسینو؟ این ایجاده القراءه. نوشتم. و صحت نطق. و صحت. آه. و ص و واسه النطق نود توجب تقدما. برگرکت توجه به تقدّم نویستیم؟ آه؟ فی امامت الجماعتی فی الصلاه فی امامت الجماعتی فی الصلاه فی امامت الجماعتی فی امامت الجماعتی ال فی الصلاه فسالات نشد. فاسه بفن. جامعه. آفه صالت. ببینید اجرا یک نکته از اهمیت تجوید بیان شده. او یک نکته چیست؟ شما تانس جماعت خوان بیم؟ در عبدان می خوانیم. نه جماعتی که بین خانم ها دایر بشه نخونده نه خانده از... نه از این به بعد انشاءالله چه کنیم باز هنگام های نمازناکی ها شد اگر با هم بودیم بخانیم یک خانم وقت امام جماعت قرار میگیره باید خانم های دیگه در کنارش باشه آره پیش نباشه متوجه شدیم پس بنا وقت جماعت خواندن یک نفرشون که پیشنهاد شده، دیگروش هم کنارش درست؟ آه مشکل آ، مشکلی ببین، گفته که اجادت القراءه یعنی قرائت تجویدی. ها؟ وصحته النطق بالخروفات چی؟ حروفه؟ آ. و صحه نطق بالحروف، نطق صحه حروف، یعنی دو چیز. سبب پیش نمازی در سبب تقدم، یعنی پیش افتادن در امامت جماعت در نماز می شود. مانی از این جمله چی؟ دقت کنید چه میکنی؟ یک خانم که آدم خیلی خوبی باشه، ولی کرایتش درست نباشه. پیشنما شده نمیتون او طرفش عمل به تمتوریست تجویدش خوب باشه ولی عدالت نداشته باشه بازم نمیشه. به هر حال یکی از شرایط پیشنمازی سحط قراعت هست یا نیست؟ و صحت باز سحط قراعت با تجوید دارد درست؟ پس با توجه به این مسئله تجوید هم کمال هست برای ما و هم واجیب است وقتی پیش نماز شده نمیتونه نماز خودش هم داشته آره مشکل دیگه <تصفح> نیست؟ <تصفح> هست دیگه. <تصفح> بنابرای این تجوید به آنمای اندازه مهم هست که نماز ما را یاد و چارشکال اشکال اگر ندانستین میکنه اگر دانستین به صحت نزدیک میکنه. درست؟ نماز چقدر مهم به همه اساس میتونیم اهمیتش رو به مقدمهش که تجوید باشه انتقال دهیم. آره؟ برد. یک روایت هست میگن که عالم اگر بخوابد خواب خوابش از آدم که غیر عالم هست اگر نماز بخوانه هم بهتره. یک آدم غیر عالم نماز میخونه یک آدم عالم میخواد خواب عالم عادل عالم بهتر از نماز آدمی غیر عالم هست. این خیلی حرفه دقت میکنه چند نکته درش نهفته هست، ان نکاتش را یک ایده ما شاید بدانیم مگر نمیدانیم هم یگان روزا باز گرفته بیاریم نکاتش را سهیش؟ آره برتری عالم برتری خواب عالم نسبت به نماز غیر عالم برتری خواب عالم نسبت به نماز غیر عالم از جمله‌شان خوب دقت کنید انمجا پیدا آدم غیر عالم یعنی کسی که تجویدی نمیتونه قرائاتش درست نیست در حالی که باید علم پیدا کنه قرائتش رو اصلاح کنه قرآن نمازش نا درست میشه دیگه وقتی نا شد دیگه هیچ به هیچ ببین جاهل دو قسمه یک قاصر دارم یکی مقصر نفر میتوند درست کنه قرائتش رو نمیکنه. کنه مقصر مقصر درست تقصیر داره دیگه کوتاهی کرده فاهمیدیم؟ اینطوره پس تجوید مهم است یا نیست؟ اینشالله از این و بعد به این مسئله بیشتر توجه بشه که احکام تجوید رو خوب رعایت کنیم یعنی دستورات تجوید رو در کل خوب رعایت کنیم ان خب گرچه دیر شده ولی چیه همه مباحث تجوید را بگیریم که زیاد نیست کدام صلاه صلاح صلاح, صلاح کنن که عنوان هست اهم مباحث علم تجوید. چیکار میشه؟ ها این نه اهم اهم نه اهم مباحث علم تجوید مباحث علم تجوید صحیح کنید ما تلاش میکنید که حروف درست دا شما دنبال همه باشین و از لغنی از درست؟ اهم مباحث علم تجوید نوشتم؟ یک مخارج و حروف العربية. یک مخارج ال... مخارج الحروف العربیه مخارج الحروف العربیه نویشتیم؟ دو الصفات و داتیتو للحروف اصفات و داتیتو للحروف داتیتو الذات ذات الصفات الذاتيه للحروف للحروف و المبحث الثالث الصفات العارضيه الصفات العارضيه عين راضات ياتن الصفات العرادية للحروف العربية. بلى للحروف العرادية. ما خرج الحروف العربية الصفات الذاتية للحروف الصفات العرادية للحروف العربية. خب اینو خیلی واضحه یک دفعه بگیم جلوی سر ختم که این بعدش یکی ما خارج حروف عربی است حروف عربی چطوری خارج چطوری و از کجا خارج بشه ها از کجا خارج شه یک صفات ذاتی حروف یک حرف بدون اون صفاتش شده نمیکنه مثلا بین سین و صاد سین و صاد تفاوتش در استعلاء هست تفاوتش در استعلاست یعنی پر حجم تفخون, تفخون به تبر دیگه. اگر صاد را تفخیم نکنیم سین میشه. پس این صفت برای حرف صاد ذاتیش حساب میشه. یکم صفات های عرضی است که حالا اونا رو باز بعدن میخوانم مثلا جاهایی که باید ادغام کنیم و اخفا و مسائل دیگه اینا هست. آره. اونا صفات عرضیشان هست که انشالله بعدن میخوانیم. و الله علی سيدنا محمد و <تصفيق>